الان خدمت داور جرانی شما تو شیراز برای صبونه میری آشی سر کوچه تون آش سبزی با پیاز داغ و ون نون بازاری داغ میشونین میای خونه با آبلیمون میخورید میشه صبونه بعد میری سراغ نهار کلم پلو با سالاد شیرازی که با آب گوره درست شده باشه یعنی با آبلیمو صفا نداره تو شیراز شام من برای هیچ کسی خوب نیست چاق میکنه حالا اگه دا برای گرامی رأی به هم دادین دستون درد نکنه ایم رای به هم بهم ندین من همه چی از پشت پردر بعدن میرم میگه. خلافا آره این حرفو به کنار من یه سوالی دارم دوست من به من بگو این سالاد شهر شما که این همه درست کردنش کار می‌بره چه جوری اسمش سالاد شیرازیه من واقعا برای این ساله همون در مورد غذا آش اونم سوپ خب نفخ نمی‌کنی ببینید برخلاف همکار پرودیو سرم من فکر می‌کنم غذاها به دو دسته تقسیم میشن آش شیرازی و سایر غذاها من واقعا دوست داشتم غذا ایشو بریم سراغ شرکت کننده بعدی بنام سلماز هستم میخواستم طرز تهیه سوشی واساس بیگودی رو توضیح بدم منی از اونجایی که یه سری دستای پشت پرده توی این مسابقه سکیک هست اه اه یه سری جریاناتی رو پیشه برده برای بله. یه سر خوندم از این مسابقه کنر کشم میکنم به نشان اعتراضم تا یه هفته فقط سوسیستو به مرغ مخورم بله خب به حال شنیدیم نظرشون ایشون رو من که هل شدم واقعا واقع نمیدونم شد ماما حتما همینطوری بودید مرسا جان به نظر من رفتارشون کاملا غیر بود همون بهتری که برن سس تخمه ماک بخورن ممنونم و سعید چه صداهایی داشتن سرمازون دوست عزیز با اینکه با این سس بیگودی سعی کردی نوآوری کنی رو دوست داشتم ولی الان از پشت پرده یادداشت به من دادن یک لسه <تصف> بله بله, بله. <تصف> رأی منفی میدم من به شما نه بله رأی شما منفیه رای مرسا هم کسی رای مثبت نداره که اینجا بچه‌ها رأی همه منفیه دیگه بله. رای همه منفیه فله بله سلام امیدوارم حالت خوب باشه آذربایجان ما یه آش داره بهش میگن دوغہ دوغہ یعنی همون آش دوغ ماست آب پرنجے تخم مرغ روش بعد که تخم مرغ پختن با سبزی، ممزی همه چور سبزی داره بلی یه دونه سبزی داره اسمش ترشنگه ترشنگیا رو که ریختن نخود زیاد و با بنج همینجوری میزارن یه سه چهار ساعتی میپذی بعد میخوری با نول لاواش با نول لاواش که به این ندیل ازت داره ممنونم از شما شرف سعید سانه یاشا چی شی اعلی تعریفلادن والله نه منه به بخشی بسید ترجمه کنی یعنی جوری به ابو تاب گفتی که گوش نمونشه راستش من طرفدار دارم و لباشم و هر چیزی رو با لباش دوست دارم فقط یک پخم مرغ روی آشو من خیلی نگرفتم شرکت کننده بعدی استیک هی گمادی های going بادییت این اکسنت استرالیایی هاست پرشید من با یکی از مست شفای استرالیا کار میکنم و تقریبا با هر چیزی غذا درست کردم و میتونم بگم خوشمزه ترین گوشتی که پختم پختمکرروکدایل بوده باید به صورت ری یا میدیوم ری حتما پخته بشه ا بیشتر پخته بشه oh. خوشمزه نیست yes. واقعا خوشمزه است oh توصیه می کنمم ترایش بکنیم نیما هستم از استرالیا حتماکرکدیل رو تریم میکن شپشرام کو کا متم سس کرده بودم عل... اما نپخته بودم ان شاء الله حالا فردا میرم یه دونهشو بگیرم ببینم چه مزه میده والا با توجه به اینکه کروکودایل معمولا همه رو میخوره من فکر کنم هجوم حضور کروکودایل توی غذا حس خوبی داشت از عزیز ببخشید هجوم حضور مال بنده بود جسارت من از میخوام مرسیو میسم که شما ناراحت شدید اگه میخوای آشی چیزی دلوقت درست دلوقت بکنم, دلوقت بکنم که بگم که نفس در بیاد نه اگه اجازه بدید بچو با پرودوسر عزیز وقت نداریم ان شاء الله توی ستیک اکسرا ادامه میدیم این بحث رو ممنونم از شفای عزیز خب این هم شرکت شکل کننده های امشب استیک دادتون در از شما تا استیک فقط یک گاز فاصل است شبتون خوش؟